در شمال تهران چه کوههای زیبایی هست. بله به این کوهها البرز میگویند. الان تابستان است. اما آن کوه پر از برف است. کدام کوه؟ آن کوه. ببین آنجا. بله، دیدم اسم آنکوه دماوند است دماوند؟ بله آنکوه دماوند است بلندترین کوه ایران پس دماوند از تهران خیلی دور نیست نه دور نیست اما آنجا خیلی سرد است خیلی زیباست یک روز با هم به کوه دماوند برویم فکر است: برای یک روز برنامه ریزی میکنیم حتماً